اینجا چراغی روشن است نویسنده سید رزا میرکریمی بازیگران حبیب رضایی ما برید دنبالش همینجوری که خودش نمیاد واسه که فایده نداره که تو انشاالله سعید پور صمیمین غریبه کی تو مگه من نمیشناسی امروز یه دیرن کردی برام الله قلی نظرین چه فرقی میکنه راجی چه دروشه به بندم چه بدمش دستو قدرت فلامک جنیدی سن بسال گناه دارن همه جا خوش که فقط محمود راسخ فر از آقای کریم خریدم. از جد پدریشون بهشون ارث رسیده موسیقی محمد رضا علی قلی کارگردان و کننده سید رضا میرکلیمی پسری عقب مونده و جوون با موهای کم و لبهای درشت و تهریش در کوپه قطار با یک مرد موسن با کت شلوار آبی یک زن میانسال با چادر و یک دختر جوون با مانتوی رنگی و روسری هم سفره پسر غرق در افکار خودشه و صدای اسب در میاره متوجه میشه که تنها نیست به مرد موسن که مشغول مطالعه کتاب زول میزنه. مرد متوجه نگاه سنگین اون میشه نگاهی بهش میکنه دوباره مشغول مطالعه میشه زن میان سال به دختر میوه تعارف میکنه بفرمی دختر تکه میوه برمیداره میخوره و با لبخند نگاهی به پسر جوان میکنه پسر هم نگاهی به دختر میکنه بعد از کمی نگاهش از عشقه میگیره شیشه تکیه میده و از مرد میبرسه کی میرسیم بله کی میرسیم بیزن کجا آخرش تهرون نه نه آخرش مرد که گردن بند طبی بسته نگاهی به سرش چیزی دیگه و به مطالعه ادامه میده پسر بازم میخواد سوال کنه اما سکوت میکنه نگاه مرد به دست راست پسر که روی بغچه گلگلیش قرار داره میفته نخهای رنگی به انگشتاش بسته قرمز به شست سفید به انگشت کوچیک سبز به انگشت وسط و آبی به انگشت انگشتری پسر هم متوجه نگاه مرد میشه با دست چپ دست راستش رو میپوشونه. بری پیشه قمرت شاد. آه... نه. میام چی؟ پسر سرش رو یا. مرد آروم جلو میاد. حالا نزدیک پسر شده که اون هم خودش رو کمی جلو کشیده. نم آقا. آقا. آقا مالش متوجه نشده آهه میده و به مناظر بیرون نگاه آهه آهه آهه آهه آهه آهه آهه آهه آهه آهه آهه آهه آهه باید بری دنبالش همجوری که خودش نمیاد باستان که فایده نداره که خواب بب این شم آقاست دیگه باید نازشو کشید نازداره مرد خودش خودشو دوباره مشغول مطالعه میکنه اما فکرش درگیر پسر شده اومدیم پیداش کردیم کی میخوایی بهش میگم میگم میگم بیاد پیش ما میگم بهش که میگم آقا جون آرونت برم یه توکپا می آید پیش ما آخای ببخشید این سلطان عزیز دیگه نه موجزه میکنه نه شفا می ده هیچکاری نمی بعد دلش رو به کی مرد که کتابش رو بسته نگاهی به اون می‌کنه هم فهمیده هم نفهمیده آیا این پسر نگران به مأمور قطار نگاه می‌کنه شما ببینید ایدا بدون بلیت سوار شده خواب مگه بعدا یکی برای ضمانتش میگن چرا میری؟ اگه یادش هفت وش بیاد چی؟ پسر جوون توی یک ایسکای قدیمی منتظر ایستاده و باخشه به بغل به آسمون نگاه میکنه و با مرغان هوایی صحبت میکنه. بید کن صدای موتور اونو از عالم خودش بیرون میاره خودش رو جور میکنه متولی امامزاده است که با مامور ایسکا صحبت میکنه. بلد نیست، بدونی مهمور میره و متولی همونطور سوار و موتور به پسر جوان خیره شده پسر نگاهی میکنه متولی عصبی در سکوت بهش نگاه میکنه متولی پسر رو بر ترک موتور سوار کرده و از بغل ریل قطار رد میشن و با هم صحبت میکنه او در گوشه ای توقف کرد سوار موتور نیستم آقا حمید جان من که نمیخواستم برهoverline شما میخواستم مال خودم بره به خدا حمید جان حمو نزنیا حمو جون آقا جون نزنید عمو... متولی کتشو درن کمربندش هم درمیآره و به دنبال پسر می‌دونه پسر هم که کمی دورتر از مرد بود به پشت بوته‌ها پناه می‌بره اما اسیر مرد میشه و ضربات کمربندو تا پسر جوون یک کاسه فلزی پر از آب دستش میاره از لابلای آتشگاه و تیرآهن عبور میکنه تا میرسه به متولی که در گوشه‌ای نشسته و ناله میکنه آه و اینم آب که بخالی. متولی قرصی به دهان میدازه کاسه آبو می‌گیره میگیره و کمی آب میخوره و کاسه رو بر میگرد رد کمربن روی صورت پسر مونده و لب پایینش شکاف کن متولی میخواد دستی به صورت پسر بکشه که عبره توی آسمون میگه باز سوار بر موتور شدن و به سمت روستا میرن از کنار چند قاز رد میشن وارد روستا میشن هر کسی به کار خودش مشغوله یکی کباب میپذه یکی پارچه ها رو زر میکنه یکی لباس میفروشه فروشی، سیگار میفروشه یه نفر با دستگاه پخش سط کوچیک نوار کاست میفروشه سربازی هم از اونجا رد میشه مردی سیبیل کلفت نسبتا جوان کلاه سیاه به سر غوری رو آورده و قصد فروش اونو به یک پیر مرد داره نخش تر و نقش این طرف شو این طرف دیدم خوب نگاه کن. نه کجا آوردی اینو از آقا کریم خریدم از جد پدریشون بهشون ارث رسیده ماشی جان ببین یه کارش میتونی بکنی به کارمان نمیخوره بگیر بیرم قوری رو پس میده سلام باش کردم متولیو پس کردمون وارد بقالی چه خوبه. چه خبر؟, خبر چیکاجی گرفتاری؟ من وادلج دارم. خدا رو شکر. ببین اگه برای خودت میخوای ازونتر هم حساب می‌کونم. ورم. وسطنده دارم. خب چیکا گانی؟ ایچو جی، دکترها گفتن فردا باید برم شهر بستری بشم. حالا که عمل کنم خدا می‌دونه باشی جان یه راهنمایی بکن. علو ببین کسی می‌شناسی که من اینو بهش بفروشم؟ گفتم تو لاست کارمند نیست. ببین ما کسری سراق نداره. خب ماشاءالله چیکار کردی؟ سلامو جو خودت کسیره بزری. والله حش کردم. کار کار خودت. به هر میگم قبول نمیشه. بلند میشه و با قوری عقب میره که سرش میخوره به آویز سقف. اونارو نگا نداره. لبخندی میزنه و میره. آقا اینا هفته که بیشتر نیست. ین یعنی شبabendید. منم که اینجا این مغازه کوچیک این همه روستایی مشکل زیاد دارم آج آقا من دل هر روز میرم امامزاده زرده بیمیرم یک گوشه گرفتن کندن میترسم ولش کنم بلده آقا بدیم به قدرت چه فردم کناها جی چه درشه ببندم چه بدمش دست قدرت خود دانی من نمید این هزار تو این دو هزار تو من سم سلطن عزیز خبز ندادی ندادی شبا بجید دو هزار تومان هاچ کرم همه شکر آبادی ها دارن کمک بخوند باره یک کمه دنبال قسم آبادی ها عزیز نارمونه همه هست بعد از گرفتن دو هزار تومان قبضی رو می نویسه و به مشکرم می ده توی یک بوندداری دو مرد با هم دیگه صحبت می کنه از یک گل قبضه بون رو بودم راست کارت هسته نداره بایده بونی که باید سال با من داده بودی فروشنده از شیشه مغازهش مشراهیم و قدرت رو میبینه که با موتور به طرف اونا میبینه ساب مغازه مشتری رو میبرو به پس یا مشراهیم تسبیه به دست وارد میشه و قدرت بیرون مغازه میبینه نصر بچه از پس تو بیرون میاد و به مشراهیم سرگردون میرسه مون با... نیست که یه درخو به گوش بوده چلا با بایم نیست تو که هستی؟ مشراهیم که فهمیده به طرف جده های شم میره آمده بودم یه چند تا شم و چیزایی رو که میخواست بر میداره. یه شیشه گلاب بگیرم برام سلطان ازی. توی درگاهی تکیه داده و اونا رو نگاه می‌کنه. چشمش امنکد شده. مشهیم روی کاغذی چیزی می نویسه و یه شیشه گلاب. بینو بده به بابات. سلام منو بهش برسون. بگو ان که قبول باشه. پسر که کاغذو گرفته فقط با سر تایید میکنه. مشهیم از مغازه بیرون می نوید. در پیچه سر بالای جاده مشرحیم و قدرت سوار بر موتور بالا میرم جلوی یک معدن کارگرها بیرون میاد قدرت ایستاده و محو تماشای اون است. قدرت روی ریلی ایستاده بود که کارگرها وسایلشون رو جابجا میکنند. کنارش و هاج و واج به طرف کارگری میره که مشرحیم با اون صحبت میکنه. کارگر میره و مشرحیم سوال موتوراش میشه. کجا میرین؟ اکبر آباد. اکبر آباد. از موتور مشراهیم دم خونهی پارکه و یکی از بچه های شر با تیر کمون سنگی به موتور میکوبه و بقیه میخورده پسر جوونی با تیر صورتش رو میتراشه پیرمردی که پاشو گچ گرفته مقابل مشراهیم نشسته قدرت نشسته؟ مردم چیزی نیست قدیم بود که ما رفتیم اونجا نوم بیرون میابردیم در بچه ما خوردن الان نیست هیچ. دوان همه هم دارن اخراج میکنن بیرون میکنن همه همه گرفتار شدن میکار شدن معدن چیزی نیست از بالا سنگه معدنم پای مارو شکستم منم که گیر شدم بیکار شدم چی کار کنم هشه این چی کار؟ اینا همه بنا قدرت با ریشه قالیچهی که روش نشسته بازم میکن جورا باشم سوراخ سوراخ برکت از می رفته مسید رفت تو معدن زیر حبار مرد پجاشون یتیم شدن منم که نمیتونم برام تشییع جنازه. یک بعدا. پیرمرد گریه میکنه و با پارچه قرمز اشکاشو پاک میکنه. همسر مرد توی سه تا استکان چای ریختی که به دستش میده. پیر مردم سینی رو به مشرین میده. مشرین سینی رو گیره و روی زمین میذاره. مزید. با با داری گریه میکنی تجادت به کشپیر مرد خیال میکنی بیکرسه؟ تو که پسر به این گوندگی داری داری گریه میکنی چرا این موضوع داره نمیلی به دست قدرت قدرت که ماشاءالله که بزرگ شد الان پسر خوبیه چرا اما باید برم کار دارم بریت قطار رو داشتم ماشاءالله من فکر میکنم اگه یک کمکی نظر ممزده بکنیم همه مشکلات مشکلاتت حل میشه بیوی بهاری خیلی وقت نمیه این زیارت نمیبینمت خیلی چی چی بارم من کمر میدرد کنده پا میدرد کنده پسره رو زیارت بگم همون پسر زیارت میگه. برای چی برم سلطان عزیز سلطان عزیز برای ما چگار کرده معجزه نداره میرم آمد آباد شازاد حس هر افته مردم ها شفا میگیدن هر چی نزکنیم روشی جانش خجالت بکش سلطن عزیز برای ما چگاه اوه، مگه ما برایش چیکار کردیم با بعد تلا براش ساختیم چهار تا فرش نو توش حالا حالا تلاب برام هستیم بسر اینو سبوتانو نکن بعده به فرق نداره. همسر پیرمرد از زیر دوشکچهی که روشن نشسته دیویست تومن بر میداره به همسر پیرش میده و پیرمرد هم اونو به مشرحیم میده مشرحیم چون ببخشید این از روی کار نداره دیکاری این ها صوبه تاره رو اخراج کردم از روی نادونی این ها صوبه تاره میکنه چون ما رو ببخشید این خلاص کن که نماشه اونو به ما قبضی می نویسه و به پیرمرد میده ده پیرمردم اونو میگیره و نگاه می کنه. خدا برکت بذیر دویست دار بیا سواد خوندن نداره اما ظاهرا اونم اعتقاد زیادی به امام زاده نداره. در مسیر مشرحیم و قدرت از کنار دسته عزادارا رد میشن که دارن جنازی رو تشییع میکنن. قدرت از موتور پایین میپره و به دو میره پرچم سیاهی که یه پسر بچه دستش گرفته و جلوی عزادارا حرکت میکنه، میگیره و خودش جلوی جمراه میره و پرچمو تکون میده. مشرحیم هم همونطور روی موتور با بلنگوی دستی از آدارا مرده رو در قبرستان جلوی امامزاده دفن کردند. همه بالای سر قبر اشک میریزن و شخصی بابیل خاک توی قبر میریزه قدرت پرچم به دست به جمعه اونا میپیونده مشهیم جلوی امامزاده تسبیح به دست ایستاده و فقط اونا رو نگاه میکنه کارگری موسین با فرغون جلوی در امامزاده می کارگر دیگه ای هم که جوونه استانبولی به دست از پله ای پایین میاد و به مشرحیم نزدیک میشه و استانبولی رو پرت میکنه. خودشون میتکونه و مشرحیم مقموم محو تماشای جمعیت. کارگر میره. مراسم تشریع تموم شده و همه قدرت به طرف مشرحیم و امامزاده عشق توی چشم مشرحیم حدق زده قدرت مردم پاک دین ایمانشان از دست دادن این همرا میان تا امامزاده مهیتشان چال میکنن ولی یه سر پابوسی آوان نمیاد. خ خب خب آقا قربانش پرم چیزی کاری نمیکنه که مثلا ای کوی کو برداره ای با ای با ای سایش میبته روده سبا مشرحین بی به قدرت به طرف اون دو کارگر میره که لباس پوشیدن و حالا میخوام بریم خدا قبط استا علاوشوه. دست درست خ چیگه که استا این گاجو اینجا داشت تمیز کردیم اون مالا کردیم اون ترکار گرفتیم او بله تاسو تنداکوناست قابل حواله شماره نزد پول مبلخی توی جیب کت کار داره چقدر هست خدا برکت بده نه آقا چقد خیلی ممنون مراد بیا کارگرا میره خوش اما کمی دورتر مرد محسن کیسهشو زمین میذاره و پولش رو حساب حالا که با بده؟ نمیتونه. نمیتونه که, که کار بابا دیگر بابا دیگر. بابا دیگر. من کارگر جوان پول به دست به طرف مشرحین و قدرت برمی‌گردد. یه باشی آبا یه پول کمه دوید کار کردینه نیز پردامانه چه حقی؟ آدم برای کار خیر که پول نمیگیره یه خوردم به فکر ذخیره آخرتتان باشی بعد میگم نه خب برو کارگر میره خدافر ما حالا حالا کار زیاد داریم سخفو که خواستم بردارم میرستم دنبالتان کارگرا رفتن بیا بریم تو قدرت محوه تماشای کارگرها است آه. قدرت که آه. چشماش به آفتاب عادت کرده لحظهی داخل امامزاده رو تاریک میبینه اما سری چشمش عادت میکنه و مشرحیم رو میبینه که صندوقچه آهنی به دست میاد <تصفيق> چرا دامدار بیا تو؟ مشرایم میشینه سندوکشی پولو باز میکنه و قدرت میگیره. دیگه؟ دیگه قدرت از بغل تیره که وسط این رد میشه و کنار میشین. بیای. سندوکشی پولو به قدرت میده. مقداری پول هم از در رو و توی بشمری. چرا؟ تو دیگه مرد شدی همسن سالای تو هفت بچه داره. قدرتی که با فولا بازی میکرد لبخند بمیزن چرا؟ دارن من خیلی تر از تو بودم که پدرم این امام زادر سپر به من ورد قرآنی رو میبوسه و اونجا رو جمع, جمع. بیشتر جوانای ده حسرت منم خودم خب از تو اون موقع بیشتر دنبال کارهای سواب بودن خیلی دادیم سوالا که نبود که یا خیلی زاره داشت دسته دسته مردم نیمادن اینجا زیارت قدرت همچنان پول میشمرهشا سال که نداشتم چراغ اینجا خاموش بشه چرا قدرت ترسیدی میقداری خاک از سخت میریزی دست دست دا این کوه ها بعدداریصففر رو سر ما خراب شد؟؟ این مهندسان که هی دنبال مهندرشون میگردن اینجا حواست نباشه یا خراب میکنن یا میبرن مشراهیم خاکا رو جمع میکنم میبرن برندت بر شیطان اینجا رو ببین اینجا اینجا این فرشه میبینی این مال خدا بیامور سجلال علی آبادیه نگاه به رنگ روش نکنی خیلی قدیمیه عتیقه قدرت که نمید این هم خیلی قدیمیه در ایمام زاده به این نقشه نگاه بکن اینا همش کار دسته میدنی مالا چند سال پیشه؟ اه اه اه اه هزار بسیت هم سی ست, ست سال هست سی ست این روزا خیلی دنبال چه چیزایی هست انشاءالله ماشاالله این صندوقچرو و از قدرت می‌گیره. خیلی خوب دیگه بسه. این این این ازاریاش شد. سرت شد. خیلی ماشاءالله سلطان عزیز خیلی پول داره. دیگه نمیخواد از مردم بگیره. شما مردم این که چیزی نیست؟ بذارن برگردم. ان شاءالله پولم که زیاد بشه این بر برمی‌داریم و یک گمبدی خوشگل براش میسازیم مشراهیم صندوقچه پولو توی خورجین موتورش میزن اگه میتونستم نمیرفت چرا دکترها گفتن باید بریم قدرت جان ها. تو این مدت که من نیستم باید خیلی واضح باشی ها. مخصوصاً شبا نباید کسی تو اینجاها حرمت داره نباید گابو گوسمدشان این اینجا به چرم نه مشراهیم را میفته و قدرت هم میپره ترک موتور تو چیره سوار شدی؟ ها؟ پس من این همه روزه رو برای کی خوندم روزه؟ برای کی؟ پیاده شو یلا پیاده شو باشم اینجا تمام برگردم توی یه که من نیستم باید موازه به مامزاده باشی بشه کردی؟ مشراهیم میره و قدرت تنه باشه من شوابی کرتم احمدی که خستم برای قضا بیاره شبا. من من باید برم قدرت موند و امام زاده مادرم خدا بیان بزدش بگفت تنهایی خوب نیست همهش ستنایزم تنها شی حالا که بیچاره هیچی نمیاد پا شماچ کنه کنه داری. پارچه ای رو بالا میزنه که پاهای سلطان عزیز رو ببینه اما خب چیزی نیست با پرای آبی و زرد علم بازی میکنه و فوتی به اونها میکنه شب شده میترسه آروم و قرار نداره روی منبر امامزاده نشسته و دائم جابجا میشه شمایل دست بریده حضرت عباس علیه السلام رو برمیداره نگاهی میکنه دور امامزاده می‌چرخه میچرخه و یه جوری خودشو مشغول میکنه صبح شده از یه بشکه نفت میریزه توی ظرف نفتو نفت توی چراق میریزه کفشی دم امامزاده میبینه و یه بخشه اما کسی نیست زینی سین زنانه شب شده آ بیرون امامزاده با چرا ایستاده الله اکبر الله اکبر الله, الله, الله حالا توی امامزاده بخاری رو آماده کرده و مشغول خوردن نونو پنیر میشه صدای پیچش باد اونو کمی میترسونه با خوردن لغمه دیگه خودشو مشغول میکنه از بیرون صداهایی میشنوه بازم خودشو سرگرم میکنه اما این بار صدای در زدن میاد شجاعت به خرج میده دلو به دریا میزنه و در رو باز میکنه کسی نیست درو میبنده و چفتش رو برمیگرده بر میگرده و پیرمردی مدنکن میبینه که با لباسهای کسیف و سیاه و کلاه زرد شکسته مخصوص کارگرای معدن توی امامزاده کنار چمدونش نشسته بیلچش هم کنارشه قدرت با نگاهش نگاش دام میخودی؟ تو بو کنیگه؟ تو سلام کنیگه؟ زبان خودت بند اومده و کارگر با قفل چمدونش بدونش ورم تو سلام کنیگه؟ قدرت کمی فکر میکنه؟ سلام علاکه سلام آمده؟ خودی؟ ببیگم تو چیلیت نداری؟ قیه ها اینجا نبا دونن غریبه که این باگه منو نمیشنسته امروزا یه بیران کردی برام چه خاکش هم رو مارکتن چه خبره تو این صورت چی شده این خورده به کهروند اما اینجا هیش کی نواده اونه خبا ما همسایه هستیم ما قبرم این یه ای دوسته شب همونی که هستیم امشب هم شب ها اولمه شب اول که فشار داره میگن قبرا <تصحیح> <تصحیح> چی میگه این حفر <تصحیح> نداره آخه کارگر مادم فشار قبر داره من از بچگی مادم بودم مثل است گوری دست جمعی میمونه. ولی خب، دیگه راحت شد. اونوری زنارا دیگه هیچی نشه. رازی از پله بالا. خوب شده. ببین. میپره پایین. درد نمی کنه؟ به مرغ‌های علم و پرای اون دست میزه. ببینم تو. سری بازی چیزی بلد هستی که سرمو گرم بشه؟ دست زن اونا رو. مشرعی گفته شبا اینجا نمونه اوه، مشرعی خوش گفتی. کارش دارن کجا اگه دیدیشا بیا این قبضاره بهش بده بگو اصلا به کار با نخورد یعنی کسی اصلاً نیداش گفتن که ما خودمون حسابشو دارین رو به قدرت میده میگن که تو این برام این قبضرسون میدونی چیکار هست خب یعنی همیشه همینجوریه این چمدونه رو که داخلشونه میشه به ما دادن برطان خبرت میکنی مرد کلاشو بر میداره و به طرف بخاری میداره می با این بر مثل همون طرف چیز یعنی چایی خب بیرون باش تا خبر کنم کن دیگه بیرون و تو یه فکر رو برای این بیکاری بد دریا. ها این خب اما بیاد بعد اینجا باشی دوام میکنه. چایی که نده. وازی هم بلد نیست که سرمو گرمش کنه. خب؟ اخوابیم دیگه. دراز می‌کشه روی تخط و چمدونش رو زمین سرش می‌ذاره. بیا خو. راضیه شما؟ ببین، تمام می‌خوید و یه که از بعدا خبری نیست. قلتی می‌زنه. قدرت به قبضه نگاهی می‌کنه و توی جیبش می‌ذاره. آروم به طرف مرد میره و پاشو تکون میده. نه. بیرون. برو بیرون. ها؟ ول بیرون. خودت برو. ما نمیخوام. سر صدا نباشه. دوباره دراز میکشه. قدرت که ترسیده شجاعت بخواهد یک و یک قابلمه بر میداره اقعب اقعب میره تا دم در و اون دوتا رو به هم میکوبه بالا پیرون مرد چش باز میکنه بالا پیرون بالا پیرون گفتم مرد لبخندی میزنه و چشماشو میبنده. بورو بیرون ببینم. سوب شده. قدرت قابلمه به بغل از خواب میپره. گوشه از امامزاده خوابش برده بود. در امامزاده بازه و یه جفت پوتین جلوی دره نگاهی میکنه. سربازی توی امامزاده ایستاده و دعا. بیرون امامزاده کارگر مدن با تیشه زمین رو میکنه گروهی برای نقشه کشی به اونجا آمده ببینم بلاخره مشروه این شما را جا خودش کذاشته چلا ببخشه سوال بکنم هست. شما از کیتلا اینجا هستیم اه، چقدر ساحب میکنه؟ همون سربازی که اومده بود توی امامزاده از دیروز اینجوری که پیدا ایت دیروز اینجا رو کندم خب ببینم شما که ایت دیروز تاره اینجا هستید سید کی نارو کنده؟ چرا؟ قدرت مرد کارگر کی؟ اما سرباز دو نفر نقشه کش رو میبیند کدوم؟ مهندسه رو مگه؟ این برتر کنار اون سنگه اون درازه که هی داره میکنه ببینش اینجا کسی نی حواست رو جمع کنبی میدانم به چیشی میدم این به کنار بغیر از این کسی رو نیدی که اینجا دنبال چیزی بگرده زمین رو بکنه آه. خودشه هی میکنه خودشه سازه از راه در اومد تو سرباز دیشت. باج و واج به قدرت نگاهی میکنه که داره آسمونو رو نگاه میکنه ای بابا اینا که حوزش پرده حوزت کجاست منو بیبی دستشو بلند میکنه وای بیا نگاه قدرت به سرباز من دارم میرم اگه دیدی که اگه دیدی کسی داره اینجا رو میکنه ما رو خبر سرباز دفترچه توی جیبش میذاره و میره نقشه کش قدرت رو صدا میکنه ها؟ میشه یه لحظه کمک کنین؟ قدرت با سر میگه نه. بله من اینطوری نگیر عمودی عمودی بسه زمین قدرت که خدکش نقشه کشی رو افاقی گرفته بود زمین میذاره خوبه صاف نگیر مهندس از توی دوربین نقشه برداری نگاه میکنه کارش تموم شده کنار میره کارگر مدن یهو یه سر و کلش پیدا میشه ولی مهندس نمیبیندش. مهندس چیزی توی دفترچش یادداشت میکنه و کارگر نگاه میکنه مهندس میره و کارگر با حسرت به دوربین نقشه برداری نگاه میکنه از توی چشمیش نگاهی به قدرت میکنه قدرت که اونو دیده با دست اشاره میکنه که برو کنار. مرد از برخورد قدرت خندش میگیرد دو تا مهندسی دیگه بر یه نقشه بحث میکنن که کارگر معدن هم از بین اونها بالا میاد و نگاه میکنه لیزومن ها ما این نقشه مهندس ها مردو نمیبینن میگن چیزی پیدا بشه این اگه رو نگاه کن این یکی که اینجاست ببین اینجا نشون بده کجاست کو همه چی که نقشه نیست که اونجا رو میبینی این باید اونجا باشه اونا دیگه من کم دارم دو تا پیک بزنیم یه انفجار یه آتشبار کارش نمو و عرضی داره من نمیدونم چرا حس میکنم این جاها واری مادم. آره همون جاست دیگه بری بیستن ببینی پیداست آقا من فکر میکنم بیفاید است بگو جمع کن بنده تویام رسته نهان با قدرت بودن که هنوز همونطور وایساله با. قدرت با خدکش نقش برداری میده خوششون اومده. حالا قدرت خوشحال توی ماشین مهندسان نشسته و دو طرفش دو نفر نشسته مهندس مهندس با تو هم ها ولی بله. نگفتی اسمت چیه؟ اه. قدرت منم کاشانی هستم کاشناس معدن. این دوستانم هم همکارام هستم بیرگانی هستم با قدرت دست مهندس به حالی هست با خدایی شما. قدرت خیلی خوشحاله و حسابی لذت موند ها چیماندست؟ این سلطان عزیز که هست ما که بودیم اینو اموره بعد سپرده به... یه یادش میاد که الان باید توی امامزاده باشه آقا نگردار میزمد پاترول مهندسان میره و قدرت از سربالای اونجا خودشو به روی تپه و امامزاده میرسونه کارگر مدن با چمدونش دممه در نشسته و همچنان با قفل چمدون ور میره کی شد آمزی رو که ضرفی؟ خواب بود این ما اینجا که من اوم چکار قدرت به خاطر سرما کلاهکشباف سرشه نه. گفتن بیا مهندسا منم رفتن گفتن نگه دار هرکی از رو گفت که تو نباید بکنی بری که از باز نشدن قفل چمدان کلافه میشه و اونو کناری میذاره و خودشو مشغول گولیا پوچ میکنه اینجا همیشه همینجوریه؟ نه کسی میاد برای زیارت نه کسی میاد برای مرداش پاته بخونه چجوریه؟ نه اینجا خب یه چیزی باید بشه اینجا آها، حالا مادر ایمونشون کمه، عمو میگه. حالا منش کن. مشت کرده، زرددری جلوی قدرت میگیره که بگه گل می‌خوره. حجت داشت تلاش که بگه، اما صدای توجهشو جدی. مرد کارگر هم ناامیدانه به مشتاش نگاه میکنه کوکاب دختری جوانه که چوپان گله بزها و گوسفندا است. گلش برای چرا نزدیک امامزاده آورده و اونها رو با چوب دستش هدایت میکنه به سمت علف های تازی خوکب چوب دستش رو پشتش میگیره خوبی؟ خوکب با سر نگه آره. ششو برگشتی؟ خب بر نگشتم که پیاده شدم حالا میرم میرم خوبی ها. بگیرم کوکب براخره خواست بر اومد را را را را را. کوکب از قدرت جدا میشه و قدرت خوشباله میشه گوستنده هم که آوردی گوستنده هم که اه گفت اینجا تکون های سر یه باز قدرت و متوجه خودش میکنه بوز خیره به قدرت نگاه میکنه چندتا و عد دیگه هم گویی به قدرت خیره خیره نگاه میکنه خوب کردم و بردم؟ اه. خوب کردین؟ نه بعد بالا اینجا اینجا نه قول ها نول خب ای اینجوری نگاه نکن اینجوری نگاه نکن با حیواناست دولا میشه از رو زمین سنگ کوچیکی برمیزنم ها میذارم الان بذار ها خورد دیدی قدرت رو دنبال میکنه که با چوب دستی بزنه و قدرت بین گوزفنده و بوزه فرار میکنه کارگر مدنم از دور اونها رو میبینه و میشونه قدرت کرای پشمیش رو از سر برداشته و سعی میکنه معدبانه حرف بزنه چقدر حرف نمیزنی چرا؟ خب اینجا بابانه دیگه امونیست قرمت داره نواید گوزفندات بیان گوزفندات گوزفندات رو نمیبینه میچرخه و اونا رو اونوره تپه میبینه نزدیک کوکب میشه که روی تخت سنگی نشسته و نون سرخ بزنه میخوان بدنه به کی؟ قربون علی آه قربون علی اما میگه با چود دست به پای قدرت نزده هیچی که بتره ساعت سالشه کم کم حتیقست پ قدرت نگاه نمی ناراحتی زدم به گوسفند سنگ رو؟ ها؟ خب ناحتی دیگه میخوای ماچ کنم به بو بو گووه رو؟ کوکپ که لحظه ای با قیز به طرف قدرت برگشته بود باز هم رو می قدرت به طرف گوسفدا میره و کوکپ که گویی از قدرت خوشش میاد. میکن. قدرت بین گوسفندها دنبال اونی میگرده که سنگ خورده. کوکاب بلند میشه. نیست. صدای کاروان عروسی شنیده. برسته. ککب و پشت سر اون قدرت خودشونو از پشت امامزاده به جلوی امامزاده و کاروان عروس می رسونن طبق ها در جلو حرکت می گروهی رقص محلی می و عروس و دامان توی یک جیب و روبات که راننده ای هم دارن به سمت خونه بخت مرد قدرت و ککب خودشون پشت ماشین می و چند قدمی اونا رو همراهی میکنن هر دو میخندن و دست می پشت سر اونا مردی جوان مرد هم. دارن. و کوکب و گله از اونجا دور میشن و دست قدرت رو میبینیم جا. که با حسرت برای کوکب جا. تکون می کوکب و من دوستام. خوشگل خوشحالم که <تصفيق> قدرت توی اتاقکی که به عنوان دست‌شویی نزدیک امامزاده است بلند میشه. از لای چوبا نگاه میکنه و در مه اسگاهی مردی رو میبینی که وارد امامزاده میشه با عجله از دستشویی بیرون میاد در حین دویدن شلوارشو مرتب میکنه پاچهاشو میده پایین و خودشو به امامزاده میرسونه همون مرد نسبتا جوان سیبیل توی امامزاده است قرآنی رو برداشته و رق میزنه با اون بدن قدرت شروع به خاندن میکنه سلامی به قدرت میکنه قدرت هم جوابشو میده خوشش اومده که مرد قران خون اومده توی امام زاده مرد زیر چشميها واسش به خودت هست و دور و اطرافشو کام زیر نزد هو شاب شده قدرت چراغ فانوسی رو با کبریت روشن میکنه و مرد همچنان قرآن میخونه. کبریت رو با فوت خاموش میکنه. قدرت چراغ رو بیرون میاره و به کنده‌ی درختی آویزون میکنه. موعظه که اون مرد هنوز اونجاست. دم در مستصل ایستاده. قرآن میبنده و خودش رو به قبر نمادین وسط امامزاده میرسونه. صدای گریه قدرت میاد تو مرد همینطور که گریه میکنه پارچه رو بارا میزنه و زیرشون نگاه میکنه اشیار رو بررسی میکنه کاسه ای رو نگاه میکنه دیگه خدی ماتم شدم. برو عمو گفته شبو کسی نمونه اینجا تعطیله. امشبو نمی‌شه. نه دیگه بودم. خیلی دا کرده. ورنشو فردا صبح خداحافظ. ندان. عتیقات خراب میشه. میدونم. قدرت مردو بیرون میکنه و خرجینشو میده دستش. گلگی تو به سلطان عزیز میکنه. دفعه دیگه چه اومدن؟ مرد خرجینو روی دوشش میندازه و از در امامزاده فاصله میگیره. خیلی نارد. نگاهی backwards آره من کجا برام؟ شب سرد و ترسناکی. رعد و برق هم که شروع شده و به‌زودی بارون میاد. قدرت توی امامزاده در کنار بخاری مشغول خوردن شام. لوبیا پلو رو با نون می‌خوره. ناگهان چشمش به سوسکی میافته که چند قطره بارون روش ریخته و خیس شده. خیس شده. یا بیا غذاب بر برای بجات مقداری نوبیا براش میگذیم روزمش تو بعد میگه بیا و با لبخند به سوزک نگاه میکنه ناگهان چشمش به پنجره امامزاده میفته و همون مرد رو میبینه که با کلاه زیر بارون ایستاده دم در امامزاده و معلومه که حسابی سرده شه. مرد هم بر نگاهی میکنه و متوجه میشه که قدرت هم داره نگاش میکنه قدرت دلش به حال اون مرد می سوزه که زیر بارون خیز آب شده از لباساش که روی بنده آب می چکنه حکمت هیچ کس نمیدونه. دونه که نمی کاستی من را بدی یه خالکوبی شکل قلبم رو گردشه حتما یه حکمتی بوده که این بارون اومده سلطان عزیز خواسته که این بارون بیاد منم خیز بشم قدرت پارچه نوشته ای رو روی دوش مرد میندازه و خودش رو بگوش بشید چرا شام که خودی ماله بموند خب آره اینم سرتون عزیز خواسته لقمه ای دیگه میخواره سانو منم توی این غذا بوده حتی که کرهنگی داشته که بهش گفتن سلطان عزیز اصلا قصه شو چی بوده قدرت محوه تماشای مرد و قصه ببین اون موقع که سلطان بوده هرچی که داشته بخشیده به این بدبخت بیچارهایی که هیچی ندارم بعد بهش گفتن سلطان عزیز حالا هم تو جاشتو بهشته دیگه نه احتیاجی به من و تو و این خرد پرداد به هیچی احتیاج نداره آدمای بدبخت بیچاره دین و ایمون نداره چرا؟ داره داره داره؟ دارن. شاید دارن ولی من یه نفر رو می شناسم که هفت سر آیله داره هفت سر به هر دریم می زنه بسته در نزن یا تو از گایدن خواه. مرد کارگر با چمدون میاد و جای همیشه گش میشین. اما مرد سیبیل کولوف که اون رو نمیبینه با خودت هرش میزنی؟ اینه هی جواب میاد دور کارگر حتی از دور اشاره میکنه که کی این چیه؟ بارو روح خیزش کرده بود سلطان عزیز تمام ما بیارمش تو مرد ترسیده اما به روی خودش نبید موقع خواب شده قدرت راحت خوابیده و در کنارش مرد سبیل کرخت کورو میکنه اما خواب نیست چشماشو باز میکنه و به خروروبفش ادامه میده. کارگر معدن اونجاست و داره اونا رو میبینه. شب محتابی تعیین میشه و صبح میشه. قدرت قلتی میزنه. سردشه کارگر معدن نشسته بالای سرشو و عصبی با کلاه زرد شکسته و کثیفش که چرا قویه هم داره ور میره. قدرت از خواب ناز بیدار میشه. بیدار شدی؟ می خوب. قدرت بلند میشه و کتش رو میپوشه جلوی در امامزاده میستی می سرد نه؟ کارمشکی باید میاد همچی؟ بفهمی نفهمی ها؟ قدرت تازه میبینی که اون در عتیقه کنده شده و دیوار که خورد شده تو اولو این به جانی به سر خوابیده بودی؟ و به جادم مردی؟ و مایی چی انگار نه انگار نمیفهمی میبستی ناشم تو دیودینچو ولی یه در آجای چه بود تو برای شما توش بود چرت بیهای اونم چی نچیش منا؟ اصلاً چیزی رو قو بشو تو قلی خبیده بودیا؟ اگه تو قلیم لحظه بود مسئله ایم دیون است یعنی توی آوازیا تو آبیتال نبود؟ قدرت میره. اه. چه خشنی شدا گفت چرا درمو میبندی هی؟ حالا دیگه نمیشه بس اه. کی کی گفت قدرت پیش کوکب و گلشه کوکب روی سنگچین با چوب دستش نشسته و قدرت بالا سرش کوکب سیبی از توبرش در میاره و عزیز گفت تازه گفت خویاسی. خوبی هستی عقلم زیاد دل. دل. تو خواب گفت دیشب. قدرت کنار کوکب روی دو پا روی سنگچین میشینه کوکب به قدرت نگاه میکنه و مشغول سیب خوردنه محوزیب خوردن اونه که یه هو کوکب متوجه میشه و اونو با چوب دست حل میده افر. قدرت اقفا میره و کوکب یه سر سفرات میره بابا همه شدگه که قسمتت همینه هرچی بشینی جوون سراغت نمیاد چرا <تصفيق> میگه چشاد چپه به کوکب نگاه می نگاهی به زمین نگاهی به آسم اه. این که قشنگه که با یکی آسمون رو بینی با یکی زمین رو یه دفعی کوکب ناگه ها خنده قطع میکنه ناراحت یه دهی از خنده قدرت کوکب عصبی میشه و سیب و پرت میکنه جلوی گوسفندا. قدرت هم ناامید کلای کشبافش رو میچشه روی گوشش همسنای من هفتا بعد نه بیستا بیستا بچه خب زنگ گرفتن که بچه دارم من اگه کار نشتم میرفتم ولی من کار دارم در قبرستان جلوی امامزاده دختر جوان بالای سر قبریه و گریه میکنه کارگر مدن دورتر ایستاده و نگاه میکنه قدرت پیش مرد میاد و دستی بر شونش میذاره. زنی محسن با دو بچه یکی پسر یکی دختر از راه میرسه و پیش دختر میریه دیگه یاد گرفتی ها؟ تو رو درمان بکنم مرا با تو تو راستی زندگی بکنی گوه بشین اینجا گریه بکنی که چی بشه با تو خون زندگی نداری کارو بشین گریه کن اگه ست سبم اینجا گریه بکنی زندگه نمیشه تو دیگه وقتی زندگی بذاره من چی فرگرگرده بکنه ها؟ خوشو. خوشو ببینم خوشو خوشو ببینم زن محسن همش یه بد حالا دختر جوان مادرش رو دلداری میده. ظاهرا زن محسن همسر کارگر معدن. خب من راستش خودم که نبود. و شد دیگه دیگه. توی حمصاد جلوی بخاری قدرت های کارگر معدن رو مالش بود. یک بله پایین خوبه قدرت میاد و مقابل مرد میشه چای میریزه و میده دسته <تصفح> <تصفح> دوایی که گفتم تو هر خونه هست <تصفح> قدرت در تایید اون میخنده ولی تنهایی بدهد یا لیوان چای دستش و هنوز نخورد چرا؟ بده این کارایی هم که ابرو میکرد در رو قیز نمود بشناسمش دلش هم رنیشده بود زن دیگه نووت دوه ره در رو قیز حق دوه من چی کرد و همین سخف چهار سر چهار تیم قول داده بودم و بسته بود بلی خدا بزوریه حالا الان این دختر بخته دیگه چو روزی میخواد بره خورشوع یتی چه قولی نتونسم براش جور کنم. دفعه معصوم چیزی سر نگون کرد. قدرت که روی زمین خطای کشیده و با قند و زغال در واقع با خودش دوز بازی میکنه، حریف خیالی رو شکست داده. باختی. همون لیوان چای دست مرد حالا جنرال قدرته. شبه قدرت خوابه که با صدای گریه و ناله کارگر معدن از خواب بیدار میشه مرد به تیرکی تکیه داده و گریه میکنه قدرت اعتنایی نمیکنه و میخوابه مرد کلاه زرد مستعملش رو سرمیزده کیف بیل و تیشش رو به دوش میگزه چمدونش رو برمیداره نگاهی به قدرت میکنه پتوی روی قدرت میکشه و قدرت آرام میخوابه صبحی دیگر قدرت توی خواب لبخندی میزنه از خواب پا میشه میشینه مرد نیست رفته همینجا زنمو قدرت سر صندوقچه که اکسی از زنمو اشتوی درم اونجا به هم نرزی نه اومدم یه چیزی بردارم صدا خیالیه چند لباس گلمنگولی بردارم مالی زنموه اه کوتی میبینه مشکی برش میده بابا بازم توی صندوقچه میگرد اه. این چرا آمده؟ اینجا همون صندوقچه پرپول فیض که مشراهیم با خودش برده بود آه چقدر پر قدرت بخچه به بغل توی روستا راه میره به مردی اصاب دست میرسه نشونی کسی رو میپرسه و مرد هم راه نمایش قدرت از مرد جدا میشه و از جروه قهوه خونه ایرد میشه به <تصفيق> نیزی میشه که همون دوتا کارگر پشتون میشه است. بودت کارگر استکان چایشون رو برمیدارن و هر دو نگاهی در صفح به قدرت مدازن بعد نگاهی به هم میکنن و بالاخره کارگر محسین از جوانه میخواد که ما برای آخرت کار نیم برای آخرت اون پره <تصال> <تصال> <تصال> قدرت از جیب کتش مقدار زیادی پول درم پول عجیتون رو میدم رفسان جان صبح روزی هست چرا چرا سر مازیذو که دیگه اچما نمیذاره من بخوابم این بعدنجی که هست موده صاحب چش سخت سقفه آقای جان گیده‌ آ قدرت قدرتی می ره کارگرا سقف امامزاده رو برمی‌دارن و قدرت که کت مشکی آقاشو پوشیده خودش رو توی آینه نگاه می‌کنه من قدرت با کارگر مسن که عینک دودی زده دست میده و ازش جدا میشه و از تپه پایین میره قدرت بخچه بغل بدون کلافیه کوچه های روستان میده بچه های شر و شور اونو دنبال میکنن قدرت ترسان میده قدرت به در خونه میرسه تو میره و در رو از پشت میبنده قدرت نفس عمیقی میکشه و چشمش به تنور خونه میافته که آتش از اون زبانه میکشه دستی به طرف تنور میبره داخل گوسفندها هم توی آقوله صدای آواز نی توجهشو جلب میکنه بیان بقیه بیا کوکبه که از اتاق با سینگه چای برونه قدرت تا چرا اومدی؟ خب خواستگاری مومدم دیگه کوکب میخنده خب بیا این خرعت نرم گذاشت کنار خدا کوکب سیام. بی توجه رفته قدرت از پله هایی که کوکب بالا رفته بود بالا میره و میخواد بخچه رو به کوکب بده که کوکب اونو دعوت به سکوت میکنه و میگه گوش بده هر دو پشت پرده رنگی اتاق فال گوش خواستگارهی نمی کنیم کوکب بازم اونو دعوت به سپود رو کوکب پرده گرگلی رو کنار می و نگاه میکنه. قدرت یکی از چایی ها رو که بخاری هم ازش بلند میشه شه بر می داره جرعهی می نوشه نراحته برگردم آرش دوباره میاد داخل اتاق رازی نیست. رو با گوشه روسریش پاک میکنه. قدرت خوب دقت میکنه. میخواد ببینه که چی میگن. پرده رو کمی کنار میزنه و نگاه میکنه. برادر، یا داره ما هنو نیدانه همون از کردم خدمت شما من که به عبرش به قریبه زن نمیدم تو خیلی دو خیلی دارم احسای دست من هم که این کبلهایی هم مشتری شد و بالاخره هم میخوام بگیم به این کبلهایی چی زیاد سن نداره پتباً پنجه سال سن داره پس خودشم بپرس نکنه اگه این دو تا همدیه را خواسته باشم بوش که من شما دو تا پیه را عله خودش میگم این آب این نمیره آقا تو این آب این کشم قدرت به پوتین دم در میافته و همون سر بازه بی هیچ حرفی کلا بافشو سر میزن سره نه قدرت آهسته آهسته و ناومی توی کوچه قدم بر داره که بازم بچه های شر و شور سرارش میاد اعتناعی به اونا نداره و رایشو ادامه میده تا اینکه با سنگ به سرش میکنه نیسته برمیگرده به طرف بچه ها به اونها نگاهی میکنه ها فرار میکنن یکی از اونها که مونده بود سنگ دستش رو زمین میندازه و اونم فرار میکنه سرش بعد جوری درد میگیره جای سنگ روی کلاه مشکیش دیده میشه قدرت تلو تلو خوران به طرف امامزاده میره. از زیر کلاه جایی که سنگ خورده خون جاریه. در راه از جلوی خونه رد میشه. پسر خونه اونو میبینه. مادرش به طرف قدرت میاد. یتیم ها... یه سقف و سرپنابو داشت ایشالله گنبد طلا براش بذارن خودم میان پابوسش قدرت و نفشه اون سندگاره جمع کن بچه زیرو باش کرد اما قدرت بی توجه میره شب شده سردر امامزاده تابلوی بسم الله الرحمن الرحیم دیده میشه در نداشت حالا سخت فرم نداری. بوخاری روش قدرت به تیرکی راکی تکیه داده و هم دو سوره را میخورد. آن که یا <تصفيق> وقتی یا که یا که است. ادراست را دعوت کنیم، را دعوت کنیم. ابداعیم، عید پاک، عید پرستار. آه آه قدرت متوجه صدا میشه بیرون میاد اهالی روستا مشعل به دست به دنبال چیزی میگردند. جای ضربه سنگ هنوز درد می‌کنه به سنگ گفت سرزان عزیز بزرگ میشی یادت میره گفتم میخوام برم دیگه کار ندارم. گفت نه هیچی نکنم تک رو قدرت لای بخچه میذاره میخواد بره گوزفندی جلوی در امامزاده اومده و میدوه قدرت اونو میبینه بلند میشه بیرون میره و باد قرآن روی ره رو ورق مزن که توی امامزاده رو تکون میده قدرت گوسفند به بعل برمیگرده یه گوسفند سفید میاد توی امامزاده کوکب کوکبو میبینه که روی زمین کف امامزاده دراز کشیده قدرت با گوسفند کنارش میشینه گوسفند رو رها میکنه و به کوکب خیره میشه خوکر با صورت کمی زخمی حرف قدرت رو تایید میکنه و بعد نگاهی به بالا به جایی که دیگه حالا سقف نیست بیندازه قدرت هم متوجه اون شده مستنی شده نه؟ گفت. دلش ستاره ها تنگ شده تو خواب باف و به ستارهای آسمون خیله پشه این اون یکی نورش از همه بیشتره اه چشمک زد دیدی؟ بهش بکنه در یاد باید برم اگه نرببیچار نمیشه اشک که از چشم قدرت میچکه کتش رو پوشیده میخواد بره که صدای کوکر نگهش بود در تاریک شب فانوس به دست راه میره صدای گوزفندارو رو به اما اونا رو نمیبینه تعداد زیادی کارگر معدن در اون محبت جمع شدن دارن ارزیابی میکنن و همه چیزو آماده میکنن آماده میکنن برای انفجار یکی از اونا سیگار میکشه و کنار اهرام انفجار ایستاده با اشاره اون بقیه کارگرها کنار یک ترکتور میشینن کوکب که شبو همونجا سر کرده خوابه و روش برف نشسته گوزفنداش دوروبرشه فجار کوکب چشم باز میکنه، خندان بلند میشه. خوشحال بین گوسفنداش قدم میزنه، نگاهی به در و دیوار امامزاده میکنه، از قسمت در که حالا در نداره خارج میشه. همه جا همه جا سفید پوشه. به کارگرا نگاه میکنه، بعد از اون باد و بوران و برف چرافی که قدرت به شاخه درخت آویزون کرده. هنوز روشنه و قدرت کلاه به سر توی قطار ایستاده سر از پنجره بیرون کرده و به مسیری که میره خیره خیره نگاه بندگان عزیز این فیلم در جشنواره فجر موفق به دریافت جوایزی مثل بهترین کارگردانی، بهترین فیلم برداری و بازیگری نقش اول مرد رو نصیب خودش کرده بود. اما عواملی که در این برنامه ما رو همیاری کردند مثل همیشه جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار خوب برنامه بودند. فرشاد آزرنیا تهیه کننده و سردبیر و بنده که به عنوان نویسنده و گوینده در خدمت شما بودم بهرام سربرینی امیدوارم که باز هم توفیقی نصیب ما بشه و عمری باقی باشه که بتونیم با رادیو فیلم دیگهی در خدمت شما باشیم تا اون موقع خدا نگهدار